بنامی خداوندی بی اندازم احرابان نهایت باره بگو با پروردگار مردم با پادشاه مردم با خداوند مردم پناه میبرم از شریع وسوسکونندهی پنهان شوینده آن که در های مردم وسوسه میفگنم از جیان و مردم قدّس الله العظيم خداوند راشد گوی بزرگ است